بارها و بارها عرض کردم و باز تأکید می کدام شخص وقتی به بررسی اختلاف مکاتب و اندیشه ها و فرق می پردازد چون این ادعایی دارد من ابتدا در بین ادیان الهی و غیر الهی همین سؤال رو طرح کنم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 که سعادت و تکامل را برای شما تضمین کند اما بعد از رهلت پیغمبر مدعیان اسلام متعدد و مختلفان او میگوید من حق میگویم دیگری میگوید من حق میگویم در راه در مقابل هم و متزاد دست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 اسلامی که خط مقابل علی و آل علی خواست به مردم بشناساند